کردم که پیروان مذاهب توحیدی و یک تا پرست در سراسر دنیا بدون امتیاز مذهب این مردم به چه گروه تقسیم میشن این تخشیم بندیم به نسبت سطح فکر هر فردی یا سطح تمدن و فرهنگ هر قومی اینها را این سه گروه رو می توان به سه دسته شاگردان یک کلاس می کرد یعنی یک شاگرد فقط از ترس کتک معلم و توبیخ پدر و مادر درس می خونن. پس این از روی ترس درس میخونه یه یه ای از شاگردان هستند که برای گرفتن جایزه و انعام درس می خونن. درس میخونه برای که معلم جایزش بده پدر و مادر هم بده اما یه ادعی که از همه روشن فکرتر هستند درس میخونن فقط برای خاطر درس نه برای خاطر تنبیه شدن نه برای جایزه گرفتن بشر هم همینطوره یه ادعی هستند که از ترس خدا از خشم خدا برای که خداوند بر اونها مصیبت وارد نکنه عبادتش میکنن یه دهی وقتی عبادت میکنن که یک حاجتی خواسته باشن گرفتار یک اشکالی باشن خدا رو میپرستن که اون اشکال رب بشه یا اون حاجتشون برآورده بشه ولی ستایشگر واقعی کسیست که خداوند را به عنوان بخشنده نعمت او را بستایت در برابر نعماتی که خداوند به او داده نه از خدا ترسی داشته باشه نه هم از خدا انتظاری زیرا خواهد فهمید که آنچه خواست بشر خدا به انسان داده حالا در برابر بعضی اشخاص خداوند را به شکل فرعون مستبد خودخواه تصور میکنند و خیال میکنند اگر با خضو و خشوع و کامل گریه و زاره، زاری یا هدیه و قربانی به خدا تعرف ندن خدا به خواسته هاشون توقع نمیکن یه دی خیال میکنن اصلا خدا بی توجه نسبت به پیروانش و تا یه چیزی ازش نخواهی اصلا به فکر خواسته کسی بر نمیاد وقتی که به گاتای توشت رجوع کنیم میبینیم خداوند را گاهی پدر، گاهی برادر و گاهی دوست میخواند یعنی انسان وقتی در برابر خداوند میایستد فرض کند که در جلو پدرش قرار گرفته یا دوستش یا برادرش در گاتا یسنای 45 بند 11 آمده کسی که از پرستش دیوان حالا دیوان منظورش اون دیوپرستانی که در زمان زردوش میدونید مذهب هندو ایرانی گروهی از خدایانشون به نام دیو معروف بودند و این دیوها البته به معنی فروغ و روشنایی و ایناست ولی بعد از اینکه که این دیوپرستی را من کرد ما میدیم دیو را آدم بدشناست هران کو ندارد به یزدان سپاس پس وقتی دیو پرستان میگیم یعنی اون مردمانی که پیرو مذهب هندو ایرانی قدیم یا مذهب شرک و بودپرستی بودند. کسی که در از پرستش دیوان و فرمان برداری از آنان روی بگرداند و به پروردگار یکتا و آین مقدسش اخلاص ورزد اهورامزدا به چنین کسانی برابر وعدهی که داده چون دوست و برادر و پدر خواهد بود یعنی اینجا هر خداوند را چون دوست، چون برادر و چون پدر خطاب میکنه بعد یسنای 43 بند 14 میفرماید همان گونه که دوست مهربانی پیوسته پشت و پناه دوست خود است ای اهورامزدا مرا یاری کن و نیرویی به من تا بتوانم آیین تو را به خوبی بگسترانم اینجا اشو زرتشت اهورامزدا را دوست خود میدونه و توقع داره همون طوری که یک دوستی به دوست خودش کمک کنه به او هم کمک کنه باز در یسنای چلو پنج بند چهار میفرماید اینک سخن میگویم از راهی که برای زندگی بهترین راه هاست راهی که مزدا مقرر فرموده و آن راه اشاست این راه را مزدا اهورا که چون پدری نیک اندیش است برقرار داشته تا با پیروی آن این زمین بکر به وسیله کشاورزان کوشا بارور شود حالا اینجا از راه عشا صحبت میکنه عشو درتوش تمام تعالیم خودش را به یک کلمه خلاصه کرده و آن عشویی است اُشتا احمای یحمای اُشتا چید یا ایبو پنتا یو آشه ایوو پنتا یعنی یک راه است یو اشهه و آن آشویی است بعد دنبالش اُشتا احمای یحمای اُشتا چید خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد حالا اشا که تنها راه نجات بشر است خودش توضیح و تفسیر لازم داره اشارا ما گاهی راستی و درستی و پاکی و پرهیزکاری معنی میکنیم ولی اگر خواسته باشیم با یک کلمه پارسی اون را معنی کنین میشه گو پاکی ولی پاکی به معنی اعن و اتم مثلا تو پاک باش و مداره برادر از کس باک زنن جامعه ناپاک بر برسنگ اینجا تو پاک باش یعنی تنها پاکی ظاهری نیست پس عشوی دو جنبه داره یکی جنبه ظاهری یعنی پاکی ظاهری یعنی تنمون پاک باشه جاممون پاک باشه خونمون پاک باشه و هم پاک باشه این بهش میگن پاکی برونی یا ظاهری دوم پاکی درونی یا باطنی و آن اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک حالا این اندیشه و گفتار و کردار نیک یک راهیست که وسیله خوشبختی دیگران است یعنی وقتی میگن اندیشه نیک باشه یعنی نسبت به دیگران خوشبین باش دشمنی نورد کلمه دشمن یعنی بدندیش حسادت مورد همه را با چشم نیک و پاک نگاه کن وقتی این عمل تو باشه دیگران خوشبخت میشن وقتی گفتارد نیک باشه دیگران خوشبخت میشن کردارد نیک باشه نسبت به دیگرانه پس اشویی که اشویی ظاهریه برای پاکی فرد ولی اشوی باطنی برای پاکی خلقه و دنبالش میگه اگر میخواهید خوشبخت باشید باید وسیله خوشبختی دیگران را فراهم کنید اشتها احمایی یهمایی اشتها احمای زیرا وقتی در بین جماعتی شاد و خندان و خوشبخت باشن ما میتونیم شاد و خندان باشیم اگر در بین جماعتی مفلوک و بدبخت و نالان و زاران باشن ما نمیتونیم خوشبخت باشیم پس طبق دستور اشوزرتوشت خوشبختی موقعی برای فرد هم فراهم میشه که اجتماع خوشبخت باشند حالا الان راجع به پاکی محیط زیست در همه جا صحبت میشه در رسانه های گروهی در روزنامه ها و یکی از گرفتاری های بشر امروزه کسی بودن محیط زیسته تا حتی میگن اوزنم داره لطمه میخوره اوزن هوا و اگر همین همینجور هوا ناپاک باشه فردا یک بدبختی بزرگی برای بشریت پیش خواهد آمد تازه این روزها بشر متوجه پاکی محیط زیسته اما فکر کنید چهار هزار سال پیش وقتی که عشوز در توش پرمود آتش و آب و هوا, و را, پاک را،, هوا و را پاک نگه دارید چقدر باید سطح تمدن ایرانی بالا رفته باشه که متوجه باشن فکر کنید هزار سال پیش اکثر مردمان یک کشوری بیشتر در دهات زندگی میکردند در دهات هوا پاکتر از شهره خوراکشون پاکتر و تمیزتر از شهره و مردم دهات کمتر متوجه آلودگی محیط زیست میشن وقتی بشر متوجه میشه که شهرنشین نشین بشه جمعیت زیاد بشه هوا بیشتر آلوده بشه حالا نشون میده که زمانی عشوزرتوشت این دستور را به در درجه اول به ایرانیان و در درجه دوم به جهانیان اعلام کرد نشون میده که تا چه اندازه مردمان سطح تمدنشون، پیشرفتشون، پرهنگشون چقدر بالا باید باشه. وقتی که به اصول دین هر مذهبی نگاه کنیم، میبینیم اصول دین را باید انسان بدون اینکه کنجکاوی بکنه درباره آیا درسته آیا غلطه این را تعبدن بفضیره مثلا اصول دین اشو در توش اول یک تاپرستیه اهورا مزدارا را هر توان توانای کل هر آگاه دانای کل و هر خدا یعنی خداوند کل صاحب و مالک کل بشناسی وقتی این عقیده داشته باشیم خواهیم دید که اهورا چه قدرت و بزرگی و نیرویی داره اگر کسی در دین زرتشتی بگه من به یک خدا عقیده ندارم میتونیم می بهش بگیم آقا پس تو زرتشتی نیستی وقتی گفت پیامبر اشو زرتوش قبول ندارم از جانب خدا آمده میگیم تو زرتشتی نیستی اگر معتقد به بقای روح نباشه میگیم تو زرتشتی نیستی اگر معتقد به پاداش کارهای نیک و پادفرای کردارزش نباشه میگیم زرتوشتی نیستی اگر به رستاخیز و قیامت معتقد نباشه زرتوشتی نیستی ولی فروع دین را وقتی میخواهیم پیروی کنیم باید عقل و خرد به کار برد در هر کاری که فروع دینه اول خرد و عقله این است که اشو درتوش بعد از ستایش پروردگار که او مز باشه ستایش بهمن بر ما دونسته مثلا در یسنای 47 بند یکو دو میفرماید کسانی که اندیشه و گفتار و کردارشان از روی خرد پاک و برابر آیین عهورایی باشد اهورا مزدا به آنان نیرو و شجاعت معنوی و رسایی و جاودانی بخشد سناچلوهفت 47 سه ای مزدا توی آفریننده سپنتا مینو یا خرد پاک ای کسی که جهان شادی بخش آفریدی اینجا متوجه باید بشیم جهان شادی بخش نه جهان پر از غم و غسته نه جهانی که برای روح یک زندانه جهان شادی بخش آفریدی و اینجاست که خود داریوش نشون میده کاملا عقیده به زرتشتیگری داشته و در کتیبه خودش میفرماید، فرماید اهورا مزدایی را می ستایم که این زمین را آفرید آسمان را آفرید مردم را آفرید و شادی را برای مردم آفرید شادی از نعمت‌های های پروردگاره در دین زرتشتی و فرهنگ نیاکانمون. ای مزدا توی آفریننده سپنتا مینو یا خرد پاک ای کسی که جهان شادی بخش آفریدی از پرتوه مهر جهان آفرین خود به جهانیان شادی و آرامش بخشیدیم. حالا این پرتوه مهر جهان آفرین خود این هم تفسیری لازم داره بعضی از فرق یا مردم میگن خداوند انسان و مخلوقات را خرق کرد تا اون مخلوق ستایشش کنن پرستشش کنن و خداوند انسان را آفرید که در تمام عمر او را پرستش کنن ولی در مذهب زرتشتی و فرهنگ نیاکانمون میگه خداوند سر تا پا لطف و مهر و محبته و محبتش باعث میشه که مخلوقی به وجود بیاد تا اون مخلوق را بتونه دوست داشته باشه مادر وقتی بچه میزاد این برای خاطر این دوست داشتنیش او را زایونده اگر تنها نگاه به زحمات خودش میکرد هیچ وقت حاضر نبود بچه بذاره. چون خداوند در وجود مادر یک مهر و محبتی نسبت به فرزندش برار داده تنها فرزند میزایه برای که بتونه مهر و محبتش را به اونشون بده پس خداوند هم مثل سپنتا آرمیتی که از صفاتشه مثل است که موجود را خلق میکنه تا بتونه اون موجود خودش را دوست داشته باشه ای مزدا توی آفریننده سپنتا مینو یا خرد پاک ای کسی که جهان شادی بخش آفریدی و از پرتوه مهر جهان آفرین خود به جهانیان آسایش و آرامش بخشیدی من میدانم ای مزدا که با نیروی خرد پاکت بالاخره پیروان دروغ و بدکاران گرفتار ناکامی و شکست و بیچارگی خواهی شد هر دانایی که برای پیشبرد راستی در میان مردمان شهر و کشور به تکاپوی راستی برخیزد چنین کسی از هواخواهان اهورا بشمارد شمارد اینجا سریحا دستور تبلیغ به ما داده یعنی فرموده هر دانایی که برای پیشبرد راستی در میان مردمان شهر و کشور خود به تکاپوی راستی برخیزد چنین کسی از هواخواهان اهورا مزدا شمرده می شود. باز یسنا یک بنده 17 می فرماید کدام یک از این دو بزرگتر است کسی که دانا و پیرو راستی است یا آن که نادان و به دروغ گرویده است پس دانا باید راه نیک را به دیگران نشان دهد باز اینجا تبلیغه تا مبادا نادان سرگشته بماند این از دستوری که عجدرتوشت به ما داده موضوعی که امروز موضوع روزه و به خصوص در جمهوری اسلامی هم قابل قبوله موضوع رستاخیز یا قیامته که برای اولین بار این فلسفه در ایران پای گرفت علت اون هم این بود که کشور ما پلیست بین ممالک شرق و غرب، شمال و جنوب و همیشه مملکت ما گرفتار حمله و هجوم یک عده مردمان بیوطن وف... بی خونخوار گرسنه که برای بدست آوردن مال و غنایم به ایران حمله میکردند و خواه ناخوا ملت متمدن و شهرنشین و سلدوست ایرانی همیشه مغلوب حملات مردمان خونخوار میشد که اینها دیگه راه برگشت نداشتند میباسته یا بکشند یا کشته بشند پس به نتیجه همیشه مردمان سردوست در دست مردمان خونخار و گرسنه شکست میخوردی ولی بله نیاکان ما در این مواقع به ما دل میدادند میگفتند در این اینجور مواقعی مقاومت کنی روزی دستی از غیب برون آید و کاری بکند و همیشه بشر در ناامیدی بسی امید است پایان شبسیت سفید است برعکس فلسفه بودایی که میگه هر وقتی گرفتار سختی و بدبختی شدید برید خودکشی کنید برای که هدف اصلی نیروان یعنی نیستیست و هستی یعنی گرفتار سختی و بدبختی و شکنجه های جسمانی هستی ولی نیا کنیم. ما می نه مقاومت کنید و این باعث می شد که بعد از هزار سال ظلم زهاک یک کاوه آهنگری خودش رو سر نیزه کنه و تو خیابون به خونخواهی زهاک پشه همه دنبالش بدویم بگیم این همون دستی که از غیب برون آمده و آمدیم و زهاک را بین بردیم و فریدون را بر تخت نشوند این فلسفه اصلی قیامت همینه به ما امید پیشرفت میده امید غلبه بر دشمن میده امید میده که پایان هر شبی روز سفیده و این بود که هر پادشاه یا سردار یا فرمانروایی که مردم دوست رعیت پرور بود بعد از مرگش میگفتیم زنده از دنیا رفته چنانچه در مورد شاقه خسرو گفتیم در شاهنامه آمد اومده روی اون کتاب خدای که پهلوی و بندش و که دیگر معتقد بودیم که شاهرام زنده از دنیا که شاه که خسرو زنده از دنیا رفته بعدا م میبینیم شاهرام برجاوند که بعضی میگن همون بهرام گوله که پادشاهی بوده خیلی رايات نواز که ما اینکه حتی در شاهنامه آمده که بعد از اینکه اعراب بر ایران حمله میکنند مینویسه چنان فاش گردد غم و رنج و شور چرامش به هنگام بهرام گور بعد در زمان بهرام گور ایرانی ها در صلح و آرامش به سر می بردن. حالا وقتی شا بهرام به دنبال گور خر در باطراغ فرو میره این همراهانش با هم دیگر نشستن مشورت کردند، گفتن اگر ما برگردیم به شهر و بگیم پادشاه مرده و یک نفر باید بیاد جای پادشاه یک دفعه این شاهزادگان میفتند به جون هم و کشور ایران را بیران میکنند. پس بهتره که بگیم این شاه بهرام هم مثل شاه که خسرو زنده از دنیا رفته این بود که وقتی رفتن به شهر خبر دادن که باله شاه مثل شاک خسرو زنده از دنیا رفت و بناس برگرده و برای اینکه یک نفر جانشین پادشاه کنن گفتن که در بین شاهزادگان اون کسی که حاضر موقتا تاج تخت را قبول کنه و هر آن پدرش آمد تاج تخت را باز به پدر تفویض کنه میتونه به پادشاهی بر و اون کسی که کلاش پس معرکه بود و چندان امیدی نداشت حاضر شد و باز برای اینکه مردم را در آرامش نگهداره هر روز یک اصب زن کردهای که سوار نداشت و یکی تبار و یکی شیپورچی این صبح از اینجا میرفتند سر باتلاغ و شب که میشد برمیگشتند و می ما میریم که اگر شا از آسمان آمد پایین سوار اسبش کنیم و با بوغ و سرنا و اینها وارد شهرش کنیم و این مدت بعدا معروف شد به غیبت سغرا بعدا کم کم سر و صدا خوابید و گفتند که دیگه شا حالا نمیاد و هر وقت آمد بعد خبردار می و می‌بینیم بعدا همین فلسفه در مورد امام دوازدهم وقتی به طور مجبور غیب شد براش باز غیبت سغرا و غیبت کنرا قرار دادن و بعدا کم کم به طوری که در اوستای تندرستی آمده ما اسم اده زیادی از اشخاصی میبریم که معتقدیم اینها زنده جاوید و هستند تا موقعی که به فرمان پروردگار دوباره در این دنیا بیان و انجام وظیفه کنند و اونها عبارتند از شاو بحرام را، دستور را، در، را، در مه را، در بامی را، سیشانس را، که خسروه پادشا و اینا اینا رو هیچ وقت در اوستای مردگان اسمشون نمیبریم نمیدیم ای دریاد بادشا و حرامه و جاوند را اینها را زنده تصور میکنیم حالا وقتی اشوزرتوش به پیامبری برگزیده شد این فلسفه در ایران رواج داشت ولی اشوزرتوش آمد این کمال معنوی و حقایق زندگی را به این حالت مجسم کرد و فرمود که این جاودانی ها وقتی میان دین تازهی نمیارن اینا میان عدل و داد را برقرار کنن و به کمک اینها خیر بر شر غلبه که بیدار میکنه و بدی و گناه و شر از بین میره اینه که برابر آنچه که در اوسته آمده اشوزرتشت در یسنای 47 بند پنج میفرماید اهورا مزدا به کسانی که برای پیشبرد نیکی پیکار کنند بر آنان فروغ معنوی و دانش ایزدی خواهد تاباند و چنین کسان بسیار چیزهای نیک در درخواهند یافت و بسیار نیک و سودمند برای آدمیان انجام خواهند داد و در این هنگام راستی بر دروغ چیره شود و برابر اون چه مزدا خبر داده بد بدکاران و نیک و کاران پس از اینکه به سزا و پاداش خود رسند آنگاه مهر اهورایی برانگیخته شده و به دوزخیان بخشایش خواهد کرد البته برابر این دستور باز میبینیم در عوستا پنام ستایش که خورد عوستاست میفرماید افتم بوجید دروندانش از دوزخ افتم یعنی در پایان بوجید یعنی نجات میده از فعل بختن دروندان یعنی بدکاران را از دوزخ بلی باز زردوش برای توضیح این جمله میفرماید در این هنگام راستی بر دروغ و خیر بر شر فیروز شده و زندگی آدمیان به کمال معنوی خواهد رسید بیگمان در چنین واقعی بزرگی برای مردم جهان یک مجده نیک و شادی بخش خواهد بود بازبند دوازده براستی کسانی در زمره سوشیانتا و رهانندگان جهان به شمار خواهند رفت که فرمان مزدا و وظیفه خود را با نیکمنشی بجای به جای آرند و بر ضد گناه و بدی به پاخی زند و آن را در هم شکنند میبینیم این عقیده بعد از اینکه کوروش یهودیان را از اثارت بابل اصارت هفتاد ساله نجات داد برای اولین بار یهودیان دو سه فلسفه از دین ایرانیان گرفتند یکی خداوند خالق عالمیانه ولی یهودیان در اول میگفتند یهوه خدای قوم بنی اسرائیله خدای همه دنیا نیست بعد از اینکه از دست کورش آزاد شدن و کورش را یکی از رهانندگان خود یکی از اون موعود آینده خود تصور کردند و هنوز هم در تورات او را رهاننده و مسیحای خودشون میدونن یعنی نجات دهنده خودشون. پس آمدند این عقیده کورش را که دین زرتشتی دی داشت پذیرفتن نجات دهنده خودشون پس آمدن این عقیده کوروش را که دین زرتشتی داشت پسی رفتند و از این به بعد گفتند یهوه را زه زه نباید اسمشو برد با بیهترامی نباید کرد و اسم خدای یگانه را عدونای قرار دادن و گفتند عدونای خدای عالمیان ماست یکی دیگر از چیزهایی که از ما یاد گرفتند همون عقیده به قیامته برای که اونجا کروش را دیدن که تقریبا برای یهودیان یک قیامتی ایجاد کرد منجی اینها شد مسیحه اینها شد باز قیامت را در دین خود وارد کردند که اینها بعد به مسیحیت و از یک طرف به اسلام از یک طرف از ایران باز به اسلام رسید یکی دیگر اون فلسفه هفتم شاسپندانه که اینا آمدن هفیل برای خودشون درست کردن شمایل و جبرایل و میکائیل و اسلافیل رو مانند اینها تا حالا 124 هزار پیغمبر آمدن همشم حرف راست دادن همشون هم میخواستند بشر را به راه راست و درست رهبری کنند ولی چرا بشر گوش نمیکنه چرا اون اصول دینی که پیامبران آمده آوردهاند اصول دین را ول میکنیم و همه میچسبیم به تشریفات ظاهری به مراسم ظاهری دور هم جمع بشیم یک حرفهایی بزنیم و یک نمازهایی و یک درودهای خونده بشه و یک فراهم کنیم بخوریم و تمام شد را. هر فردی از افراد زردشتی موظف اصول دینش را بدونه اگر کسی بپرسه از یک فرد زردشتی که اصول دین شما چیست چه جوابی میدهیم فقط میگیم بله باید روز پنج بعد نماز بخونیم برای مرده این تشریفات داره برای زنده این تشریفات همه راجع به تشریفاته ولی وقتی که به اصول دین زرتشتی رجوع میکنیم میگیم اصول غیر از فروع دینه مثلا یکی از اصول دین زرتشتی اینه که به یکتایی و توانایی احورامزده باید ایمان داشته باشی یعنی قبول کنیم که اهورامزدا یکی تنها و توانا بر همه کاریه باز هم میبینیم در نماز صد یک نام خدا صفات خدا را میگه یکیش هروش توان یعنی توانای کل همه کاری میتونه بکنه هروش آگاه، دانای کله به هروش خدا یعنی صاحب و مالک همه چیز است البته خدا در فاردبان فارسی به معنی اهورا مزده یا الله نیست مثلا سعدی میگه یکی برستر شاخ و بون میبورید خداواند بستان نظر کرد و خداوند بستان یعنی صاحب باغ. خداواندگارا قدیم وقتی میخواستیم کاغذی به پدرمون بنویسیم در انشا به ما یاد میدادند بنویس خداواندگارا وقتی به پادشاه نامه مینوشتیم گفتیم بنویسید خدایگانا پس خدا یعنی صاحب مالک رئیس بزرگ همه این ها باز حروس خدا ابده یعنی بدون آغاز ابی انجام بدون پایان ولی میبینیم باز برای خدا که هر وست ما چقدر معاون و زیر و کارکن و اینا درست کردیم براش دومین اصول دین زرتوشت اینه که پیامبران را رسولی از جانب پروردگار باید بدانیم یعنی اون که پیامبران به ما امر کردن اون امر از جانب پروردگاره ولی ما بشر سر همین پیامبری که همه قبول داریم که از طرف خدا اومده و حکم خدا باعث خوشبختیه سر اسم پیغمبر میفتیم به جون هم چه کشتارهایی که سر دین و مذهب و اسم پیغمبر و اسم کتاب و زبانی که با اون کتاب نوشته شده آمده به جون هم میفتید شوامین، اصول دین یه ظاهری. اصول دین عقیده به بقای روحه جاودانی روانه یعنی انسان بعد از مرگ زندگیش تمام نمیشه اون جسم مادیشو میگذاره اینجا ولی روح لباس دیگه و جسم دیگه میگیره میره و این تن آدم وقتی میمیره مثل کفشیه که از پا بیرون کردن و این کفش کنه شده صاحب کفش کفش نو پوشیده و داره میره حالا این کفش یا این لاشه آدم بسوزانش، تو آب بندازش، تیکه تیکهش کن برای روح فرق نمیکنه. او ادامه میده و ما آریایی ها عقیده داریم که خداوند اول روح را در عالم جمادات وارد کرد اونجا تجربیات به دست آورد عالم جمادی را رها کرد وارد عالم نباتی شد آمد اونجا هم به دست وارد عالم حیوانی شد بعد انسان شد بعد میگیم میریم بعد از مرگ میریم عالم فروهران بعد عالم ایزدان بعد عالم امشاه و آخر کار بر میگردیم به احرام از دا حالا این چند هزار سال یا چند میلیون سال طول میکشه، هیچ کس نمیدونه. باید تا این دوران خودمون را کامل نکنیم، به عالم دیگه راه پیدا نمیکنیم. مثلا یک بچه اگه افتاده که هر چی در این دنیا زندگی کنه، هیچ چی نمیفهمه از این دنیا. این وقتی مرد روحش با, با آدم هفتاد هشتاد ساله که یک عمر تجربیات و علم آموخته برابر نیست پس دوباره باید برگرده یعنی تناسخه ولی تماسخ یعنی بریم عالم پایین تر در فرهنگ ایرانی نیست مثلا هنوز هندیها عقیده دارن که اگر در عالم مادی، در عالم انسانی یک گناه بزرگی مرتکب بشیم، ممکن آدم برگرده به عالم حیوانی. و میگن حیوانات را اذیت نکنید، شاید روح پدر و مادر و آبا و اجدادمون باشه. ولی عاشور توش که آمد و این فرهنگ را شنید گفت نه. وقتی که خداوند میدونه که روح ما عالم حیوانی را کامل کرده اگر در عالم انسانی غلط کردیم دوباره تناسخ پیدا میکنیم دوباره برمیگردیم به این عالم انسانی به درجه پایین‌تر نمی‌ریم مثل که یه بچه دبستان رو تمام کرده اگر دبیرستان بره و سال اول دبیرستان تنبلی کنه دوباره نمی فرستنش دبستان که از اول دبستان کار بکنه پس بقای روح یعنی این یعنی جسم انسان فانی میشه ولی روح ادامه پیدا میکنه حالا این روح چیه؟ از چه چیز خوشش میاد؟ ما هیچ نمیدونیم از جمله رفتگان این راه دراز باز آمده کو که به ما گوید راز ولی ما بنابراه عقل و فهم خودمون برایشون سوپره پند میکنیم و این چه خودمون خوشمون میاد پره مرده میداریم و خیال میکنیم هنوز اینها چشم و گوش و زبان و احساسات و شکم و اینا دارن و اسمیم و نمیدونیم هنوز هم نفهمیدیم که در این دنیا که میریم از چه چیز خوشمون میاد از چه چیز بدمون میاد هنوز بیخبری پنجمه من چیز اصول دین عقیده به اینکه که هر کار نیکی پاداش نیک داره و هر کار بدی جزای بد یعنی بهشت و دوزخت حالا بهشت و دوزت هم به زبان فارسی یک جای معینی نیست بهشت صفت عالی به قدیم مثل که الان میگیم به بهتر بهترین قدیم میگفتیم به بهتر بهشت مثل انگلیسی good بهتر best best انگلیسی و بهشت فارسی یعنی بهترین مثلا مه یعنی بزرگ مه مح محفر مهشت مهش یعنی بزرگواری شخصیت که به زبان اروپایی هم چون زبان آریایی به جای مهش میگن مجست و هیز مجستی یعنی بزرگواری شخصیت شاهانشاه دو زخم از دو کلمه درست شده دوش یعنی بعد مثل که دشمن میگیم یعنی کسی که منشش بده نسبت به ما دشخیم کسی که قصد و ارادش بده نسبت به ما پس دوش یعنی بعد اخو یعنی مرحله به پایه که ما در روستان میخونیم اخوان اشوان روشن بهشت گروسمان اخوان اشوان یعنی مراحل پاکان مراحل اشوان پس زخ یا دوشخو یعنی مرحله پس ولی خب پیغمبران چون که با مردمان جاهل هم سر کار دارن مسئل معروف چون که با کودک سر و کارت پتاد پس زبان کودکی واید گوشاد پس هر پیغمبری به محیط اون کشورش بهش در یه جوری توضیح داده دوزخ را یه جوری ولی به قول یکی از شعرها به قدر فهم تو دادند شرح دوزخ را که مار قاشیه و اغرب دو سر دارد اگر خدای بخواهد که بنده آزارد یعنی بندگان خودش به عذیت کنه اگر خدای بخواهد که بنده آزارد ز مار و اغرب دوزخ گزندهتر دارد ولی نمیدونیم چیه و آخرین اصول دین ما رستاخیزه عقیده به قیامت روحه پس به طوری که آشکار کردم اصول دین ما شیشتاست اول یکتایی و توانایی اهورامزدا دوم برگزیده شدن پیانبران از جانب پروردگار سوم نجات بشر در پیروی از اشویی اشویی ظاهری و اشویی باطنی که اندیشه و گفتار و کردار نیک باشه چهارم جاودانی روان پنجم پاداش کارهای نیک و پادفراه کردار زشت در هر دو جهان هم این دنیا بهشت و دوزخ است هم بعدش و شیشام رستاخیست این از که این اصول را هیچ وقت کنه نمیشه ولی فرو یعنی راه رسیدن به اصل با تغییر زمان و مکان باید عوض بشه با بالا رفتن سطح فکر باید عوض بشه پس در تمام کارهای زندگیمون سنت و رسم و روش مرتب داره عوض میشه مثلا همون کسی که میمیره در قدیم میداشتنش تو دخمه یک زمانی میسوزندانشون میگفتن با حرارت و بخار آتش و نور آتش روح میره آلام بالا بعدش دفن در زمین بود تا حالا سه جور عوض کردیم این بهش میگن فرو باید عوض بشه یک زمانی برای مرده اونقدر تشریفات بود عوضتاها بود داباز دهم ماست بود وندیداد موحو بود و 820 بود هر مردین یش درون اینها بود که تمام اوقات زمانی که مرده میمر تا دهم ده همیشه میواسه یک تشویق خاطر بگذره ولی حالا فکر مردم بالا رفته و ساده تر شده برای که ما هنوز نمیدونیم آیا این همه اینا که برای روح میخونیم میخوایم واسطه بشیم اون دنیا پارتی بازی بکنیم که خدا اوز گناهش که میبرتیج جهنم حالا ببرتیج جوزه در دین ما میگه روز چهارم مرده در دادگاه پروردگار حاضر میشه گناه و ثوابش میسنجن و اگر ثوابکاره میره بهش اگر گناهکاره میره جهنم اگر برابر بوده میره همستگان یا برزخ ولی این کارهایی که ما الان میکنیم برای تسلی خاطر بازماندگانه برای اینکه که اون مرده یک به مبلغی خانوادش بدن برای خیر و خیرات و ما می بینیم بعد از مرگ مرده که می‌گیم یک دهم ده مال مرده کار خیر و خیرات باید باشه هر کس یاد داره میاد مدرسه می بیمارستان می درمانگاه در خانه پیران می کتاب‌های کتاب های دینی چاپ میکنن و منتشر میکنن و این کارها درسته که به اسم روح میشه ولی استفادهش کی میبره؟ اجتماع و کشور پس در کشوری که عقیده به بقای روح باشه تمام این کارها خود مردم انجام میدن هزینهش نمیفته گردن دولت ولی کشور کمونیست که هفتاد سال دوام داشت چون عقیده به خدا و بقای روح و اینجور چیزهایی نداشتن تمام خرج این ساختمان اینجور چیزهای عمومی افتاده بود گردن دولت دولتم پولش کافی نبود ورشکست شد پس عقیده به بقای رو و انجام کارهای نیک اکثرا برای مردمان این دنیاست برای خویشان و بستگانی که تسلی خاطر پیدا کنند یک پولی هم بدن برای دستگیری نیازمندان و بیچارگان و بینوایان امیدواریم گاهی خیاله های باطل و غلط تو کلمون نیفته برای که به قول یکی از دانشمندان میگه تغییر دادن نظام سیاسی یا حتی نظام اقتصادی در یک کشور آسانتر از تغییر فکر و روحیات و سنت مردم است. حکومت به آسانی میشه عوض کرد. قانون اقتصاد مثل که کمونیست بودن حالا دوباره برگشتن به کاپیالیست یا سوسیالیست، آسونه ولی، ترز فکر مردم سنت مردم خیلی مشکل رو بز کنیم مردم یک کاری که عادت کردن آن خیار میکنن همین کار درسته اگر جوری دیگه راهنماییشون کردی صحیح تر یادشون دادی میگن ما عادت کردیم نمیتونیم و امیدواریم طبق دستور اشو در توش در هر کاری عقل و خرد به کار ببری خرد افسر شهریاران بود خرد زیور نامداران بود خرد رهنما و خرد رهبوشا خرد دست گیرد به هر دو سرای کسی که خردمنده هم در این دنیا و هم در آخرت عقل و خرد دستشو میگیره شما بیاد دارید در قدیم اصلا پرسه یک جا جمع می شدیم همه می اومدن چایی یا قهوه میخوردنو و می نبود پرسه در خونه خودشون برگزار می و تک توکی مردم می اومدن، خدا بیاموزی می دادن میگفتند به اون شخص بازمانده و قهوه کوبیده و نباد بود این قاشق میریختن دهن و می رفتن. و پرسه جزو مراسم دینی حساب نمیشد. ما در کتاب های دیلیمون بعد از اینکه شخصی در می‌گذره گذره و چهارم و ده و سی روزه بوده حتی روزم در قدیم نبوده روزم بعد اضافه شد پس این پرسه مخصوصاً وقتی که زردشتیان به تهران آمدند، و هر یکی در یک محله زندگی میکردن و خونه همدیگر را به اشکال پیدا بیتونستن بکنن این بود که انجاما دستور داد که همه در یک جا جمع بشن و اوستام نداره میدونید پرسه عوستام نداره وقتی جمع شدیم میباسته ی عوستاییم بخونیم بعد گفتیم همون اوستایی که برای خاک درگذشتگان در گذشتگان در آرامگاه میخونن که به نام یشت گاهان معروفه همین عوستا هم امروز بخوانه پس یکی از مراسمی که سابق بسیار ساده بود و امروزه اجتماعی شده و گرون تمام شده اینه حالا سعی کنید اقلن در سه چهار جا قرار بدید همش یک جا نباشه مثلا این که ندی که در میر تهران پارس هستند اونجا پرسه برگزار کنند. اینهایی که مال خانه تفته خانه هستند اونجا برگزار کنند یا به آدریان بزرگ میکنن که همه، مجبور نشن که یک جا بشن و خرج گرون در بیاد هر جوری میدونید این دیگه با نزدیک نظر خود ملته اما سه و چهارم در قدیم خودتون یاد دارید که وقتی کسی فوت می کرد، اون شخصی که بازمانده اون در گذشته بود راحت و آسوده تو خونه منشست. و همسایه ها و خیش و ها به خصوص خانم ها روز سوم هر یکی یه چیزی برمی یکی تخم برمی داشتن یکی برنج می آورد یکی شکر می آورد یکی آرد می آورد و خونه اون شخص در گذشته نان و آش و چیزی میپختند و اگر کسی برای تصیرت می آمد خود این همسایه ها و خیش و ها تذیرایی می و همیتون آماده میشدند برای صبح چهارم که یه عدی می اومدن و اونجا پذیرایی میشدند و شخص درگذشته گذشته دیگه مجبور نبود بدو دنبال تخم مرغ و دنبال پنیر و سبزی و خوراک و اینا الان میبینیم که فوق العاده سخت شده و حتی برای آرامگاه رفتن میدونید قدیم وقتی که کسی در میگذشت میبردنش پرسش اونجا شستشو داده میشد و بعد فقط خویشقم های خیلی نزدیک میرفتن تا آرامگاه دیگه همه مردم نمیرفتن. ولی بعد بختانه در, در ایران چون پرسشمون بردیم در آرامگاه و یه جایی نزدیکتر نیست اینه که همه پا میشن میرن و اونجا یه عدده خیال میکنه مثل قدیم که روان می بردن دادگاه و می دونید صبح که می بردن زور اونجا می رسیدن اون نساسالارا غذایی نداشتن می باسته یه تخم مرغ و پنیر و سبزی رو اینا آماده کنن که اون نسا ها بخورن حالا هم مردم میرن اونجا با ماشین میرن با ماشین بر می غذاشون هم خوراق و زور پخته آماده از خونه ولی با یه دینونو و پنیر و سبزی و نمیدونم اینها میبرن مردم بینی که اونجا میان و این خودمون کار را مشکل کردیم. حالا در کرمان سوام بیشتر از چهارم اهمیت میدادن چون مردم پراکنده بودن زردشی ها در دیات خیلی دور از کرمان زندگی میکردن سوام میومدند. و دیگه چارم چندون اهمیتی نداشت ولی در چهارم چارمو بیشتر از سوم اهمیت میدادیم. و چارم خودمونو موظف میدونستیم که هر جا هستیم بیاییم سری چهارم و شرکت کنیم همینطور دهه و سیروزه و اینا به طوری که میدانید قدیم خیلی ساده بود ولی امروز روز به روز سختتر میشه و به خصوص در این گرانی تازه یه عده یاد گرفتن که مردم که از آرامگاه میان میده همه بیان آدوریان اینجا به رنگ و خورشت و آش رو اینا تهیه کردن و ببایسته اقلن سی ست ست نفر قضا بدن این اینها هیچ وقت حکم دین نیست اینا تظاهره اینا خودنماییه تو خونه خودمون هر کاری میخواییم بکنیم ولی چشم و همچشمه اگر ایجاد بکنیم خطرناکه و بیشتر اونهایی که ترک مذهب میکنن به واسطه سنگینی بار دینه و خیال میکنن این اشودرتوش دستور داده اینا خودمون پیش, و پیش میاریم